بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافی و ترهی نو در اندازیم اگر غم لشکران گیزد که خون عاشقان ریزد من و ساقی به هم تازیم و بنیادش بر اندازیم شراب ارغوانی را گلابن در قدح ریزیم نسیم عطر گردان را شکر در مجمر اندازیم چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش که دست افشان غزل و پاکوبان سراندازین صبا خاک وجود ما بدان عالی جناب انداز بوبت کان شاه خوبان را نظر بر من اندازیم یکی از عقل میلافد یکی تامات میبافد بیا که داوری ها را به پیش داور اندازین به هشته ادنگر خواهی بیا با ما به میخانه که از پای خمت روزی به حوز کوسر اندازین به هشته ادنگر خواهی بیا با ما به میخانه از پای خمت روزی به حوز کوسر اندازین سخندانی و خوشخانی نمی در شیراز بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازین